امروز چون برنامه های پیشینمون مهمانی داریم مهمان بسیار ارزشمندی مهندس، موبیت، کامران جمشیدی که ایشون برانشین انجامن ما سا و امروز هم میخواییم در این برنامه دوباره از دانش گسترده ایشون در باره بندی بحر جوشتارها بحله بگیریم و من درود میفرستم به شما مواده بزرگ و سپاس که دعوت ما رو پذیر افتیم. بخش اونوی و با درودی دوباره به شما و همه بینندگان گرامی راه زرتاش و پیام زرتاش رو پی میگیریم و هم دیگه و میکوشیم تا روشنی بیشتری بریم این پیام با هم دیگه بیندازیم.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 استوار میتونیم بگیم که به دنبال دانش بود، دنبال آگاهی بود. پس یک فیلسوف بود. در کنار اینکه از اندیشه های ایشون، از آموزه های ایشون، از سخنان ایشون ازش فلسفه و جهان بینی میاد بگیریم. پس یه فلسفه رو به مولد گذاشت. فلسفه یک تا شناسی و آم شناسی رو در جهان که یک دین جهانی ازش به وجود اومد. این از این و دانشمند پس بود چون به دنبال دانش از از از راه دانش ها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 ابرخرد خرد است ابر دانش است عبر دانه است حالا هر کدوم فارم اگه که بهش بگیم ابر دانش دانش برتر این واجه ما رو به یک سو میبره اگه بگیم عبر دانا دانای برتر ما رو به یک سوی دیگه میبره در ذهنیات عمونی ما انسانها. ها وقتی میگیم دانا حتما باید یک چیزی باشه یک کسی باشه یک چیزی باشه که داناست. وقتی میگیم دانش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 همج و شکوری که داشته از این روی بوده که پایه این فرهنگ پایی بوده پایه های این و خردگرایی و شهادونیستی و پیشتوی بوده که از به ما ایرانیان علمقان داشته در که دوباره بکوشیم این چنین باشید موام درباره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 که میبینند بسیاری از ایرانیان یا پارسی زبانان روی به روی رو به اینو ببینید و اینها میان برای اینکه اینها رو ساب کنند یا ایرانیون رو پارسی رو به این سمت بین کنند، میان از بخشای از اوستار که تاریخی و سیاره نزدشمندی ما هست بخشای از وندیدوت رو میونن دستوراتی رو میونن و اینها رو عدم میکنن میگن که این این گونه هست و رو در این باره از نسک عوستا قانون اونچه هست بگیر و بخش وندگاهش برای بگیر سپاس کذار میشه. بفهم کنم بله خواهش میکنم اگر ما بخوایم نخست انجا بیایم که وقتی میگیم نسک عوستا خوب بیرونم باید بدونیم که یعنی یک کتاب یا دفتر نیست یک روی همی یک مجموعه ای یک جنگی است از اگر دوشه نوشتار چون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 ایزدان که ما در بخش دیگری به این ای بیشتر خواهیم پرداخت. سرودهای های حماسین سرودهای های استوره سرودهای بسیار زیبایی هستند که اینا میشه گفت فرهنگ فکر فرهنگ مردمی ایرانیان هستش که در این اشت های گردآوری شده. سپس داریم ویسپرد داریم یا ویسپ و همه رد ها همه سرد که اونم دیگری هستش که،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 این از وندیدات که بخشی از پوستش شما بود برای بله سپاسگوزارم از شما موید بزرگوار در این زمان کمی که داشتیم بسیار گیرا باز کردید برامون و این گاله برامون بودی سپاس موید بزرگوار در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 یه می میگفتم که یک نژاد فقط ما داریم برای کور و اون نژاد انسان است انسانی که زندگیش رو در هماهنگی با بخشهای دیگر طبیعت باید سامان بده و به پیش ببره بله برای این برای همه است و هیچ ویژگی به هیچ ملت خاصی نداره البته با توجه به اینکه زادگاه و خواستگاه دین به ای ایران زمین هست و در ایران زمین بوده که هزاران سال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 میتونید از اون رو هم در پیام باشید و از هر کجا که هستید میتونید از آموزش دین بهی به من بشید و سپس گزینش نخواست آموزش و سپس گزینش میتونی تیش تفاوتی نمیکنه از کجا هستید و چند جا دو که مهدبزرگ هر